بسم الله الرحمن الرحيم شمариكي كدورو خندي مرسدين بشمارة سيف ومكتاب أقسام الفعل أقسام فعل والفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام فال بس قسم تقسم مش هذيك ماضي يك ماضي نحو كتب ما عندك كتب نبشت دو مضارع مزارع اعراب اقسام رو داره اعراب تابع هست مزارع به خاطر این مجرور شده است که اقسام مجرور هست هست نحو یک مانند ماننده می نویسد یک کتبو و سه و سه و فعل امر نحو اکتب عمر مانند اکتوب بنویس نوشت می نویسد بنویس پس اینا سقیمه فیل بودند این ضح سبق لك ان جميع الكلمات تنحصر في ثلاثه انواع. بگی قبلا برای شما رد شد گذاشت که تمام کلمات در سه محصور هستند یک فعل فعل و اسم دو اسم و حرف اسم و فعل و حرف و اوضحنا لك ان كل لفظ يدل على حصول و وزمنه يسمى فعلا وواضح گردانیدیم برای شما هر فعلی که هر لفظی که دلالت بر حصول چیزی بکند و دلالت بر زمانش بکند یعنی حصول چیز و زمانش یوسف ما فعل نابیده می مانند کتبه اولا دلالت بر حصول نمشتن کرد و هم همچنین زمانش که گذشته هست مثل نصره دلالت بر حصول کاری کرد که یاری کردن است و این زبانش که گذشته بود یاری کرد نوشت رفت و الفیل و انقسمو یعنی الى ثلاثت و فیل تقسیم می شود سه قسم ماض و مضارع و امر ماضی مضارع و امر فالماضی فالما ی ماضی چی هست ما یدل علی حصول شیء فی زمن مضا ماضی آن است که دلالت بر حاصل شدن چیزی بکند در زمانی که گذشته است نحو کتب نوشت دحرج غلتانت انطلق رفت شروع کرد استخرج خارج کرد و المبارعو تعریفش چه است؟ بایدلو على حصول شیئن فی الحالی او الاستقبالی مزاره آن است که دلالت بر حصول چیزی میکند در زمان حال یا آینده در جمله معنیش مشخص بیشود با قرینه اگر بگوییم یکتب الانه الان بینویسد اینجا یکتبو دلالت بر حال میکند بل اگر میگیم یک تبو قدن با تاجو به کلمه قدن ما میدونیم که یک تبو چه دلالت بر استقبال میکند پس بزاره صلاحیت اینو رو دارد که دلالت بر حال بکونه و دلالت بر آینده بکونه استقبال نحو بالد یک تبو میدونیسد یده خرجو ینتلقو و یستخرجو ولا بد ان یکونه مبدوءا به الف او دورد او یا او تا و باید شروع شده باشد ولا بد ان یکون مبدوئا و باید شروع شده باشد فعل گزار اسم یکورو هو هست که به فعل گزار برمیگردد ولا بد ان یکونه بدون مبدوئا خبر یکو است بر صوب است با اسمش هو هست است که به گزار برمیگردد ولا به ولا بد شروع شده باشد فعل گزار با, با الف وارد ده انصروف و یا با نون سر رو، او یا یا با وسیله یا با یا شروع شده باشد سر رو، او تا یا با تا شروع شده باشد ماننده تنسرو والامر ما یطلب به حصول شئید امر آن است که طلب کرده می شود به وسیله آن حاصل شدن چیزی مانند اکتوب برمیس دحرج، حریج بغلطان انطلق برو شروع کن با ترجم قرینه معناه مختلفی داره و استخرج و خارج کن این بود از درس شماره سوم کتاب ارزشمند ادروس و نحویه موفق و پیروز باشید